کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده این داستان کلم خری روزی روزگاری شکارچی جوانی بود که همیشه برای شکار به جنگل می رفت یه روز که سود زنان تو جنگل راه می رفت زن زشت زن به طرفش اومد و گفت روز به خیر شکارچی عزیز انگار تو خیلی خوشحال و حالی اما من دارم از گرسنگی و تشنگی می می رم لطفاً به من کمک کن دل شکارچی به حال پیرزن بیچاره سخت. جیواشو گشت و هرچی داشت بهش داد. وقتی میخواست براش ادامه بده پیرزن جلوشو گرفت و گفت گوش کن شکارچی عزیز به خاطر قلب مهربونت میخوام هدیهی بهت بدم. همینطور براد ادامه بده. چند قدم جلوتر؟ به درختی می رسی که نه پرنده رو اون نشستند و به خاطر یه لباس با هم دعوا میکنند. با تفنگت هدف بگیر و به طرفشون شلیک کن اونا لباس رو می و اما یکی از اونها میمیره و به زمین میافته و بقیه هم فرار میکنند. اون لباس لباس آرزوهاست اگه اونا بفروشی و در یه چشم به هم زدن میتونی به هر جا که میخوای بری قلب پرنده مرده رو هم در بیاره و گرت بده با این کار هر روز صبح زیر بالش خودت یه تکه طلا پیدا میکنه شکارچی از پیرزن دانا تشکر کرد و با خودش فکر کرد چه حرفای عجیبی میزنه کاش همه چیزایی که گفت حقیقت داشته باشه شکارچی براه افتاد و کمی جلوتر از لابلای شاخه یه درخت سر و صدایی شنید. وقتی به اونجا نگاه کرد گروهی از پرندگانو دید که دور یه لباس جمع شدند و هر کدوم سعی دارند اون رو طرف خودش بکشونه. اونها جیغ میزدن و با نوک و پشون با یکدیگر میجنگیدن تا صاحب لباس بشن. شکارچی گفت: واقعا حیرت این دقیقا همون چیزیه که پیرزن گفت. تفنگشو پر کرد و روشونش تکیه داد و میون پرنده ها شلی کرد. همه رو فراری داد و همه پرنده هم وحشت زده از اونجا دور شدند. اما یکی از اونها کشته شد و به زمین افتاد. بعد شکارچی به دستورات پیرزن عمل کرد. سینه یه پرنده را شکافت و قلبش را گرد داد. لباس را هم با خودش به خونه برد. صبح روز بعد وقتی شکارچی بیدار شد به یاد قول پیرزن افتاد و فوراً بالش زیر سرش رو بلند کرد. بله واقعیت داشت. چشم او به یه تکه طلا افتاد که به زیبایی می درخشید. روز بعد و روزهای بعد همین جریان ادامه داشت بعد از مدتی اون صاحب مقدار زیادی طلا شد اما یه روز با خودش فکر کرد اگه همیشه تو خونه بمونم این همه طلا به چه درد من میخوره من باید به سفر برم و دور دنیا رو بگردم پس با پدر و مادرش خداحافظی میکنه و کوله پشتی و تفنگ و بر و به راه میفته یه روز مرد داشت از میون درخت های یک جنگل بزرگ رد می شود. اون تازه به انتهای جنگل رسیده بود که جلوی خودش قصر بزرگی رو می بینه که وسط یه دشت خیلی وسیع قرار داشت. پشت یکی از پنجره ها ایستاده بود و دختر جوان زیبایی هم کنار او به بیرون خیره شده بود. پیر زن که یک جادوگر بود به دختر گفت یه نفر داره از جنگل به این طرف میاد. تو بدنش هم یه وسیله ارزشمندی هست که ما باید اونو ازش بگیریم. دختر عزیزم اون تو بدن خودش قلب یه پرنده رو داره. به خاطر همین هر روز صبح زیر بالش خودش یه تکه طلا پیدا میکنه. پیرزن جادوگر به دختر گفت که چگونه چیزی را که میخوان بتونن به دست بیارن و اینکه دختر باید چه حرفایی به مرد بزنه و در نهایت با لحن تهدیدآمیز آمیز بهش گفت اگه کارایی که میگم انجام ندی بعد پشیمون میشی وقتی شکارچی به قصر نزدیک شد چشمش به دختر افتاد و با خودش گفت بعد از گذشت این همه راه که اومدم حالا میتونم تو این قصر زیبا استراحت کنم هرچقدرم که پول بخوام بهشون میدم اما واقعیت این بوده که اون با یه نگاه به دختر علاقه شده بود بعد وارد قصر شد اهل خونه هم با مهربونی ازش پذیرایی کردند تو مدت کودایی که او به دختر جادوگر علاقه من شد فقط به او فکر می کرد و به چشماش خیره میشد و هرچه دختر میخواست فوری انجام میداد. تا اینکه روزی جادوگر پیر گفت حالا وقت به دست آوردن قلب پرنده است. مرد جوون متوجه کمبودشم نمیشه، یه نوشیدنی درست کرد و اونو توی لیوان ریختا به دست دختر داد تا برای مرد شغارچی ببره. دختر گفت: این نوشیدنی را به خاطر من بنوش. مرد لیوان و گرفت و وقتی همه نوشیدنی را سر کشید قلب پرنده از دهانش بیرون اومد. دختر پنهانی قلب و برداشت و ارد داد. چون جادوگر پیر اونو برای خودش میخواست از اون بباد مرد دیگه زیر بالشش طلا پیدا نکرده بود و بقیه تلاها نصیب دختر شد. اما شکارشی به قدری به دختر علاقامت شده بود و در جادوی دختر گرفتار شده بود که هیچ چیز براش مهم نبود جز اینکه همیشه در کنارش باشه جادوگر پیر گفت قلب پرنده مال ما شد حالا باید لباس آرزو هم از او بگیریم دختر جواب داد بهتر اونو برای خودش بذاریم و همین الان هم چیز مهمی رو از دست داده. جا دوگر پیر عصبانی شد و گفت اون لباس نیروی عجیبی داره و توی دنیا مثل اون کم پیدا میشه. لباس آرزو باید مال من باشه. و سرانجام هم مال من خواهد شد. اون دختر رو کتک زد و گفت اگه به حرفاش گوش نکنه بازم تنبیه میشه. دختر مجبور شد به دستورات مادرش عمل کنه. یه روز جلای پنجره استاد با ناراحتی به دور خیره شده بود. شکارچی پرسید. چرا ناراحتی؟ دختر جواب داد. آه عزیز من. یه جایی دور از اینجا یک رویه سنگی هست که روش پر از سنگ درخشان و قیمتیه. خیلی دلم میخواد به اونجا برم و هر وقت فکر این مسئله را میکنم دلم میگیره. چون هیچ کس نمیتونه خودشو به بالای کو برسونه مگر اینکه پرنده باشه باشو بتونه پرواز کنه شکارچی گفت اگه مشکل تو اینه من میتونم آرزوتو برآورده کنم بعد دختر رو در لباسش پیچید و آرزو کردن به کوی سنگی برن توی یه چشم برهم زدند اونجا نشسته بودن سنگهای قیمتی در گوشو کنار کو میدرخشید و اونها با لذت این منظره رو تماشا می و زیباترین اونها را هم جمع میکرد. اما جادوگر پیر شکارچی رو افسون کرد تا ناگهان خوابش ببره. مرد به دختر گفت: بهتر کمی استراحت کنیم. من قدری خستم و دیگه نمیتونم رو پاهام بیستم. اونها رو زمین نشستند و مرد به خواب رفت. دختر فوری دست به شد. لباس را از تن شکارچی درآورد و رو دوش خودش انداخ. سنگها و کوه را ترک کرد و آرزو کرد به خونه برگرده. وقتی شکارچی بیدار شد، فهمید که دختر بهش کلک زده و اون روی اون کوه تنها گذاشته. او گفت: آه چرا این دنیا پر از بعد بدون اینکه بدونه باید چیکار بکنه با قصه و اندوه روی زمین نشست. اما کوهستان متعلق به قولهای درنده بود و بعد از مدت کوتاهی اون سه تا از اونها رو دید که به طرفش میان. به خاطر همین رو زمین دراز کشید و خودشو به خواب زد. غولا نزدیک شدند و اولین لگدی بهش زد و گفت این کرم خاکی از کجا اومده؟ دومی گفت زیر پاد لحش کن سبومی گو با غرور گفت ولش کنید بزارید زنده بمونه او اینجا دووم نمیاره و اگه بالاتر بره عبره اونو پایین میبرند. بعد از گفتن این حرف قولها به راه خودشون ادامه دادن اما شکارچی صدای اونها رو شنیده بود و به محض اینکه که دور شدند، بلند شد و به طرف قله رفت او چند دقیقه اونجا نشست بعد ابر اطرافشو پوشوند و مرد را با خودش برد. بعد از یک سفر کوتاه در آسمان، ابر پایین اومد و اونو میونه یک باغ سبزیجات بزرگ که دورش دیوار کشی شده بود، رو زمین گذاشت. شکارچی به دور برش نگاه کرد و گفت کاش چیزی برای خوردن پیدا می کردم خیلی گرسنه‌ام. بعید می دونم بتونم چیزی برای خوردنی پیدا کنم. چون اینجا نه سیب و نه هولو نه هیچ میوه دیگه ای هست. فقط تا چشم کار میکنه سبزیجاته. بالاخره فکر کرد کمی کاهو و کلم که میتونم بخورم. نباید زیاد خوشمزه باشه اما بهتر از هیچیه. او شروع به خوردن کرد و به خاطر گذرسنگی زیاد با عجله همه کلم ها رو خورد میداد. اما کم کم احساس عجیبی بهش دست داد. متوجه تغییرات عجیبی تو خودش شد. او دارای چهار تا پا و یه سر بزرگ و دو تا گوش دراز شده بود. بله. وحشت زده فهمید که تبدیل به یک الاغ شده. اما چون هنوز گرسنه بود و این سالاد خوشمزه با طبیعت جدیدشم خیلی سازگار بود با اشتهای بیشتر به خوردن ادامه داد. بالاخره سراغ یک کلم دیگه رفت که رنگش فرق داشت وقتی اونو خورد تغییر دیگه احساس کرد و یه بار دیگه به شکل انسان در اومد شکارچی دراز کشید و از شدت گرسنگی به خواب رفت صبح روز بعد وقتی بیدار شد یه بوته کلم خوب و یه بوته کلم بد کند و گفت این کلم ها به من کمک میکنن تا حقم را بگیرم و آدمای بد و تنبی کنم او کلمه رو تو جیبش گذاشت و از دیوار بالا رفت و به جستجوی قصر دختر پرداخت پس از چند روز سرگردونی سرانجام به مقصد رسید او صورتش رو طوری تغییر داد که حتی مادرش هم نمیتونست اونو بشناسه بعد وارد قصر شد و خواهش کرد به او جا بدن او گفت من خیلی خستم و دیگه نمیتونم راه برم جادوگر پرسید تو کی هستی یا شغل چیه؟ مرد جواب داد من مامور پادشاه هستم منو فرستاده تا بهترین سبزی سالادی را که تو هوای آزاد رشد کرده پیدا کنم حالا اون را پیدا کردم و همراهم هم هست اما اگه ممکنه گرمای خورشید این کلمه تر و تازه رو خراب کنه من نمیدونم و که چگونه اونو به مقصد برسونم آیا میتونم اونو مقصد برسونم یا نه وقتی کلمه کلم تازه به گوش جادوگر پیر رسید حوض کرد اونو بچشه گفت ای مسافر عزیز اجازه بده منم طعم این سبزی خوشمزه رو بچشم مرد جواب داد چرا که نه من دو بوته کلم کندم یکی رو به شما میدم با گفتن این حرف اون کلش رو باز کرد و بوته کلم بد رو به پیرزن داد. جادوگر که فکرشو نمیکرد نمی کرد، کلکی تو کار باشه، دهانش با دیدن کلم آب افتاد. فوری به آشپسخونه رفت تا سالاد رو آماده کنه. وقتی کارش تمام شد، نتونست تا وقت شام صبر کنه. دوبار کلم و برداشت و به دهانش گذاشت. هنوز چند دقیقه از قرد دادن اونها نگذاشته بود که شکل آدمی زادش رو از دست داد و در حالی که مثل اولاخ شده بود به حیات دوید. کمی بعد خدمتکار وارد آشپزخونه شد. وقتی سالاد آماده را دید اون برداشت تا سر میز ببره. اما طبقا عادت همیشگیش بین راه چند تکه از اون رو خورد. تلس فوری عمل کرد. اونم تبدیل به اولاخ شد و بیرون دوید. ظرف هم افتاد و سالات روی زمین ریخت در همون زمان معمور پادشاه کنار دختر جوون نشسته بود و چون هیچ کس سالات رو نیاورد او خیلی مشتاق بود مزه اونو بچشه گفت نمیدونم پس از این سالات چی شد بعد شکارچی پیش خودش فکر کرد حتما کلم کار خودشو کرده و با صدای بلند گفت من به آشپزخونه خونه میرم و خودم اونو میارم وقتی مرد به اونجا رسید دید دوتا تا اولاق تو حیات به این طرف و اون طرف میرن و سالاد روی زمین ریخته او گفت عالی شد این دو نفر به سزاشون رسیدن و بقیه برک ها رو داخل ظرف ریخت و برای دختر برد مرد گفت من خودم سالاد خوشمزه رو آوردم لازم نیست بیشتر از این منتظر بمونید دختر شروع به خوردن کرد و مثل بقیه تبدیل به اولاق شد و به حیات دوید. سپس شکارچی صورت شد تا بقیه اون بشناسند. بعد به حیات رفت و گفت اینم پاداش مهمان نوازی و وفاداری شما. اون ستا رو با تناب به هم بست و دنبال خودش کشید تا به یه آسیاب رسید. چند ضربه به پنجره زد. آسیابان سرشو بیرون آورد و پرسید چیکار داره؟ شکارچی جواب داد من ست الاغ رو که از کار افتاده هستش دارم دیگه هم احتیاجی به اونا ندارم اگه شما قبول کنید از اونا نگهداری کنید و کاری رو که میگم با اونها انجام بدید هرچه بخواید به شما پول میدم آسیابان جواب داد قبول باید به اونها چیکار کنم؟ بعد شکارچی توضیح داد الاق پیر که همون جادوگر بود باید هر روز سه بار کتک بخوره و یه وعده غذا براش کافیه حیوونه جوانتر که همون خدمتکار بود روزی سه وعده غذا یک بار کتک و جوانترین الاق یعنی دختر جوان فقط سه وعده غذا بدون کتک زدن چون وجدانش اجازه نمیداد به یکی اونو هم کتک بزنه بعد مرد به قصر برگشت و هرچه میخواست اونجا پیدا کرد. پس از چند روز آسیابان اومد و گفت اول پیر که روزی سه بار کتک میخورد مرده و ادامه داد دوتای دیگه هنوز نموردن اما به قدری عصبانی و کلافان که احتمالا نمیتونن زیاد دوون بیارن. دل شکارچی به حال اونها سوخت و اونها رو بخشید و به آسیابان گفت هر دو رو به اونجا بیاره. وقتی اونا برگشتن مرد به هر کدام از آنها کمی از کلم خوب داد و اونها تبدیل به انسان شدند. بعد دختر زیبا به پای مرد افتاد و گفت لطفا منو به خاطر کار زشتم ببخش. مادرم منو مجبور کرد بود. وگرنه خودم دلم نمیخواست اون کارو انجام بدم. چون من به تو علاقه دارم. لباس آرزویت کموده. در مورد قلب پرنده هم الان یه نوشیدنی مخصوص میخورم و اونو به تو برمیگردونم در اون لحظه تصمیم مرد عوض شد و گفت بذار پیش خودت باشه فرقی نمیکنه چون من تصمیم گرفتم تو رو به عنوان همسر خودم انتخاب کنم جشن بزرگی برگزار شد و اونها تا آخر عمر با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند